ازل پانزده هم ماه اوت ابرهای کملا در صبح مدتی درد پا بعد از ظهر. هوای خوب دیروز بعد از ساعت پنج از مقر رسلی واقع در شهرک اوناگا خارج شدم راه برگشت دنبال کردن خطوط راه آهن سانیات تا نزدیک ایستگاه یکاگاوا بود بین راه زنی میان سال از کنارم گذشت. برگشت و گفت: آقای شیزوما واقعا آقای شیزوما هستید ایستادم ملاقات در چون این جای غیر غیرمنتظره و واقعا عجیب است خانواده همگی خوب هستند بیش از چهره از صدایش فهمیدم که تکو دوست دوران بچگی هم است. فوجی تا همکلاسی هم کلاسی دوره دبستان هم بود. این زن وقتی از دبیرستان فارغ و تحصیل شد در کارخانه نخریسی کوراشیکی به کار پرداخت. بعد رخت عروسی تدارک دید و عروس خانوادهی کشاورز شد که نزدیک درمانگاه حسوگاوا در روستای یودا بیرون شهر فکویاما زندگی می کردند. خیلی زود شوهرش درگذشت. و او میراسش را به خانواده برادر کوچکتر شوهرش واگذار کرد و به خدمتکاری در مسافرخانه کوراشیکی پرداخت. هنگام واقعه منچوری او مدتی به روستای کباتاکه برگشت اما خیلی زود دوباره خدمتکار مسافرخانه کاکامی در شهر فوکویاما شد. بعد از اینکه من هم در شهر هیروشیما شروع به کار کردم، بین راه رفت و برگشت به تعطیلات جشن اوبون و جشن آخر سال در مسافرخانه کاکامی استراحت می‌کردم. از تلفن آنجا استفاده می کردم، برای آشنایان پیغام می گذاشتم، وسایل را به امانت می گذاشتم و با این رفتار خودخواهانه باعث اذیت خانم تکو می شدم. هنگام تعطیلات سال نوع گذشته به علت درد بواسیر یک شب در مسافرخانه کاکامی ماندم مندم. آن زمان خانم تکو پزشکی به من معرفی کرد که بیماری بواسیر را درمان می کرد. معرفی نامهی هم برایم به درمانگاه حسوگاوا در روستای یودا نوشت. همچنین شخصاً به رئیس درمانگاه تلفن زد. به شرکت تلفن راه دوری زدم. از رئیس کارخانه برای قیبتی طولانی اجازه گرفتم و در درمانگاه بستری شدم. معالجه کامل حدود پانزده روز طول کشید. خانم تکو دیروز گفت چند روز بعد از ترخیصم از درمانگاه برای عیادتم به آنجا رفته. واقعا باید وقتی معذرت خواهی کردم گفت نه nah, خواهش میکنم برای تهیه برنج بازار سیاه سراغ برادر کوچکترم رفته بودم بعد به ملاقات شما آمدم حالا در چنین موقعیت غیرقابل انتظاری شما را ملاقات کردم خانم تکو هم برای جستجوی کسی به آوار سوخته هیروشیما آمده بود برادر کوچکتر شوهرش از روستای یودا بهار امسال با فراخوان سربازان ذخیره نیروی آشپزخانه بیمارستان شماره دوه نیروی زمینی ارتش شده بود با اینکه چند روز از افتادن پیکادون گذشته بود هنوز از سرنوشت او خبری نداشتند آیا مرده بود همسرش در روستای یودا چند وقت قبل برای کندن ریشه ی کاج رفته بود که پایش پیچ خورده و حالا زمین گیر شده بود و با حالت راشه فقط گریه می کرد. مادر شوهرش سالم بود اما سن زیادی داشت و آمدنش بیفایده خانم تکو برای مشورت در مورد چاره یکار سراغ رئیس درمانگاه حساگاوا در روستای یودا رفته بود. در خانه دکتر حساگاوا پزشک درمانگاه شخصی به نام ایواتاکه حضور داشت که به خاطر برنامه پراکندگی به این روستا آمده بود. این شخص درست ده روز پیش به بیمارستان شماره دوی نیروی زمینی فراخوانده شد. آقای ایواتاکه پزشک متخصصی بود که داماد خانواده دکتر میشد. او سرباز آشپزخانه نبود اما مشمول فراخانی قرار گرفت که اجتماع به آن فراخان تنبیهی میگوید. بنابراین برای خدمت در بهداری ارتش به نظام وارد شد او باید با برادر شوهر تکو در یک سربازخانه بوده باشد سرنوشت این پزشک در پیکادون چه بود علاوه بر این برادرزاده ی ای آقای ایواتاکه هم به مدرسه راهنمایی شماره یک هیروشیما می رفت که اکنون سلامتی او هم جای سوال است همچنین میخواست احوال خود دکتر حساگاوه را نیز بپرسد بنابراین تکو به ملاقات و مشورت دکتر رفت دکتر حساگاوه به تکو گفته بود به هر حال خیلی وحشتناک بود فکر میکنم داماد من و برادرزاده اشت سوخته و مردند جز رها کردن آنها چاره دیگری نبود به خواهر بزرگترم هم گفتم بهتر از صرف نظر کند اما خب همسرش بود و صرف نظر کردن برایش خیلی سخت بود گریان عازم هیروشیما شد من هم تا ایستگاه فوكویاما همراهش رفتم صبح روز نهم بود تا حالا دو روز گذشته است اما نه تلگرافی نه نامه هیچی نفرستاده است با اینکه تجهیزات پست و مخابرات امروزه برای مردم وجود دارد اما انگار نیست فکر کردم شاید روزنامه چاپ شود اما وقتی برای گرفتن روزنامه به محل توضیع رفتم گفتند چیزی نیامده است. دیروز یکی از مریضهایم گفت که حدود بیست روز هیچ نامه‌ای به دستش نرسیده است و بعد از روی استیصال اشک ریخت. صاحب این خانه برای تغذیه و تقویت در برابر بیماریش مخفیانه به سید ماهی کوهستان رفت اما از اینکه سوء تغذیه حتی در خرمگس سبز یعنی طعمه سید ماهی هم وجود دارد شکایت می کرد می گفت فقط اندوه باقی مانده. ظاهرا بمب جدیدی که در هیروشیما افتاده، برای مثال اندازه یک قوطی کبریتش نیروی هزار برابر یک بمب پنجاه کیلوی معمولی داشته. در حقیقت مواد شیمیایی وحشتناکی ساختند. نباید خواست کشتن مردم با چنین چیزهایی در انسانها شکل می گرفت. این کارها باز هم هرج و مرج به بار می آورد. دامادم تا آلو استخان شده است. پس صرف نظر کردم. عشقهای دکتر حساگاوه جاری شد. بعد از آن حرفی نزد. حتی به تکو هم نگفت به دنبال برادر شوهرش برود یا نرود. اما وقتی فهمید که تکو مصمم است به هیروشیما برود، یک شیشه کوچک کراوزوت برای سر راهی سفر بودند. تکو وقتی به هیروشیما رسید، با سؤال از افرادی که در حال سر و سامان دادن شهر بودند، خود را به محل آوار سوخته بیمارستان شماره دوی دو فقط چادری سرپا بود وقتی گفت میخواهد خواهد درباره سربازانی که اینجا بودند چیزی بپرسد سه دفترچه یادداشت برای جستجو به او دادند خیلی زحمت کشیده اید اما درباره شخصی که شما جستجو می کنید یعنی در واقع درباره سربازان آشپزخانه در این دفترچه ها چیزی نوشته نشده است خیلی بد شد مجروحان این واحد نظامی علاوه بر پذیرشگاه هساکا در خطوط کبی و پذیرشگاه شوبارا با خطوط کابه به پذیرشگاه کابه هم فرستاده شدند پذیرشگاه حساکا در فاصله تقریبی دو فرسخی اینجا قرار دارد در مورد خطوط کابه از ایستگاه یوکاگاوات ها ایستگاه یاماموتو تراموای عبور نمی کند اگر از محل سازمان ارتباطات در امتداد راه به سمت چپ بپیچی، به پیچی، آنجا می رسی. ایستگاه یاماموتو آن طرف است. این که اسمش در فهرست نبود شاید به خاطر پیدا نشدن جنازهش بود. شاید هم خودش خیلی یواشکی فرار کرده بود. شاید هم اشتباه در نوشتن بود. وقتی تکو گیج و پریشان بلند شد، مرد جوانی که در کنار سربازها نشسته بود گفت برای اطلاع شما بگویم که زخمی این واحد نظامی بیشترشان سوخته و چهرهشان ورم کرده بود. حتی نزدیکانشان هم با نگاه کردن به آنها واقعا نمیفهمیدند کی هستند وقتی صدایشان هم میزدند نمی جواب بدهند آرام ترک شدید آنها را ببینید با لحن اینها را گفت که به نظر می رسید نظامی نباشد تکو مردت شد به کابه برود یا به حساکا. اما اندیشید اکنون تردید چه نیست پس تصمیم گرفت به کابه برود از روی بی توجهی بدون اینکه درباره سرنوشت داماد دکتر حساگاوا سوال کند از چادر خارج شد. بعد به سمتی حرکت کرد که سرباز نشان داده بود وقتی هم در امتداد راه قدم میزد دید در حالی که با تکو کنار هم قدم میزدیم علاوه بر سخنان گفته شده درباره جریانات زمان جنگ در هومه فکویاما صحبت های مختلف دیگری هم شنیدم. گزارش گوناگون شنیدم. او سخنان محرمانه ای از مهمانان مسافرخانه شنیده بود. در سخنان یکی از مهمانها بیان شده بود که بیست کارگاه سفالگری در شهرک اینبه واقع در شهر بیزن به دستور دولت با استفاده از سفالهای معروف بیزن نارنجک که سلاحی اصلی است و غمغمه آب میسازند که سلاحی جانبی است. دیروز افسرانی از واحدی نظامی آمدند و کارایی نارنجک شهرک اینبه را آزمودند این نارنجک توانست پنج الوار چوب درخت کاج را در هم بشکند و ماهی های استخری را بر سطح آب شناور کند یعنی قدرتی برابر نارنجک واقعی داشت. سخن یکی دیگر از مهمانان این بود که در خط مقدم جبهه برمه گلوله های تانک های متوسط ساخت آمریکا که نیروهای انگلیسی بر آن سوار هستند وقتی به تانک‌های ژاپن میخورند بدنشان را میشکافند. اما وقتی تانک‌های ژاپنی شلیک میکنند، گلوله فقط رنگ تانک های دشمن را میبرد. کاری نمیشود کرد. اگر در جپه جزیره مالایا نظامیان انگلیس فقط دو دستگاه از این تانک ها داشته باشند، ارتش ژاپن چه میتواند بکند؟ آن مهمان این سخن را گفته بود. حتی اگر اینها واقعیت باشند، باز هم حرفهای های او را باید شایعات بی اساس در نظر گرفت. در ایستگاه یاماموتو، منتظر تراموا ماندیم و زمانی که سوار شدیم خورشید کاملا غروب کرده بود تکو گفت رویش نمی شود به خانه ما بیاید پس در ایستگاه فروی چی از هم جدا شدیم تکو گول پشتی به پشت داشت لباس سفیدی روی شلوار کارش پوشیده که بر مچ این لباس علامت صلیب سرخ بسته شده بود به نظر میرسید بعد رفتن پیش دکتر هاساگاوا با راهنمایی خردمندانه ای او این علامت را بسته بود. احتمالا به خاطر همین علامت سربازان چادر معدبانه با او سخن گفته بودند. یاد داشته اضافه شده. بازگشت به خانه را به بعد موکول کردم و به کارخانه رفتم. رئیس کارخانه را در غذاخوری دیدم و وضعیت زغال سنگ را به او گزارش کردم. توضیح دادم که وضعیت جوری است که هر هشت جهت اصلی و فرعی مسدود شده و این گره با دندان هم باز نمیشم. رئیس کارخانه با ناامیدی سخف را نگاه کرد و گفت بله، بیهوده است. فشار وارد کردن و فشار تحمل کردن بیفایده است. به هر حال خسته نباشید. جریان واحد نظامی کاجین را هم رئیس توضیح دادم. برای رفتم به اون اورا اجازه گرفتم و به خانه برگشتم. شیگکو و یاسوکو شام خورده پشه بند را سرپا کرده و در ایوان نشسته بود. از خونک ها لذت می بردند شامم را با سینی به داخل پشه بند آوردند. شاید میخواستند من هم خونک شوم، اما فقط احساس خستگی داشتم. دو مهمان مهمانمان که از راه دور آمده بودند، با تراموای قبل از ظهر برگشته بودند. صبح با درد انگشتان هر دو پایم بیدار شدم. با اینکه زخمی نداشتند، اما درد می کردند دردی نبود که یک باره به جایی حمله کند، بلکه قرین وار به چپ و راست وارد می شد. ظاهرن داغ فتیلی برای درد خوب است. نظرتان درباره فتیله گذاری چیست؟ می از جایی بومادران بگیرم. شیگه خارج شد بدون اینکه شلوار بپوشد و پارچه ضد زد زده حملات هوایی بسر کند. بعد از گذشت حدود دو ساعت برگشت. به جستجوی بومادران به جاهای مختلفی سرزده و بالاخره در خانه کشاورزی بیرون شهرک با دادن حوله نو بومادران به دست آورده بود. بومادران همراه برگ درخت در پاکتی کاغذی قرار داشت که روی آن تصویر شین چاپ شده بود. گفته می شود برای ساکت کردن درد پا باید بر قسمت سانری فتیله گذاشت. چون شیگکو، من و مسلمن یاسوکو به طور دقیق نمی دانستیم سانری کجاست، شیگکو از صاحب خانه بازنشسته پرسید. سانری، گادی قسمت بیرون زیر کاسه زانوست. شیگکو با این حرف بدون اینکه شلوارش را درآورد، آن را تا حد لازم پایین کشید و محل سانری را نشان داد. به شکل خارج از نزاکتی، چیزهایی توانستم ببینم. موضوعی را به یاد آوردم که دیروز آقای تاموتسو در پذیرشگاه گفته بود هم آقای تاموتسو و هم آقای موتسوآ میگفتند های پیکادون حتی آنها که زخمی سطحی دارند به شکلی یکسان شهوت جنسیشان از بین رفته است هر چند بیش از یک زخم در گونم نداشتم اما به عنوان یک بمباران شده مردد شدم آیا کشش جنسی دارم یا نه بسیار نگران شدم نکند سم پیکادون در من هم وجود داشته باشد. خودم داغ را در محل سانری گذاشتم. درد پایم را تحمل کردم و بلند شدم. به قدری درد می کرد که صدایم درآمد، چندبار چند بار ناله کردم که به تسکین درد کمک کرد. برای رفتن به دستشویی سختی زیادی متحمل شدم. وقتی مقدمات بیرون رفتن را چیدم، بر پله چوبی نشستم و صبحانه خوردم، صبحانه دیرهنگام بود بعد از ساعت ده صبح از خانه خارج شدم خوشبختانه وقتی به اون و او را رسیدم درد پایم کمتر شد به نظر می در حالت سرپا بودن و خوابیدن کمتر درد دارد مدرسه اون و او را پذیرشگاه زخمی ها شده بود نظامیان هم داخل آنها بودند بین راه رفتن از ایستگاه تا مدرسه با زنی بسیار خوش سیما و حدودن سی ساله برخورد کردم که از می آمد آن لحظه بوی عجیبی به مشامم رسید بوی بدی شبیه بویی که دیروز در پذیرشگاه شهرک آناگا به مشامم خورده بود بوی تعفنی بود که بیماران پیکادان متساعد می کردند ببخشید سوالی داشتم به آن زن گفتم میبخشید. شما دکتر یا پرستار پذیرشگاه ها نیستید؟ نه، عضو انجمن دفاع ملی زنان اون و او را هستم. داوطلبانه از زخمی ها پرستاری می‌کنم. دیروز هم کسانی که از مقابلم میگذشتند همین سوال را میکردند. بو که بدی می‌دهم نه؟ بله، میبخشید. اما بو پخش می‌شود. شاید شما برای عیادت بیماری آمده اید. راهنماییتان می‌کنم. بو می‌دهم پس کمی با فاصله بیایید. زن مهربانی بود. مشکلی با بوی بد نداشتم بنابراین در حالی که درباره پذیرشگاه از او می پرسیدم در کنارش حرکت کردم. آن زن اوجیما تامیده نام داشت. عضو انجمن زنان بود که با مهربانی از زخمیها پرستاری می کرد. شوهرش به جبهه منچوری اعزام و اواخر جنگ اسیر شده بود. اما با پایان جنگ خیلی زود از اسارت در سیبری برگشته بود. فکر کنم به دلیل یادآوری زجر و سختی شوهرش در جبهه با بیماران با مهربانی رفتار می کرد سربازان و زخمی های جوان غیر نظامی با گفتن خواهر خواهر به او ابراز عشق می کردند بیماری که سوختگی پشتش کرم گذاشته بود و می خیلی خودمانی می گفت می سوزد می خارد پشتم را بخارن بیماری نزدیک به مرگ گفت دل تنگم دلم تنگ خواهد و مانند چند بیمار دیگر سرش را بر زانوی خانم اوجیما گذاشت و مرد. مدتی پس از پایان جنگ این خانم بقایای استخوان دو نفر از اعضای واحد نظامی کوجین را به روستای تاکافوتا و شهرک جوگه در بخش جینسکی آورد. آن زمان هنوز اتوبوس به آنجاها رفت آمد نمی کرد. بنابراین اول به روستای کباتاکی آمد. بعد با راهنمایی آقای توماناری تراعو راه کوهستانی را پیاده طی کرد و از روستای تکافوتا به شهرک جاگه رفت از میان زخمی های اقامتگاه اونا آقای تراؤ او تنها کسی بود که زنده مانده بود آقای فکو از روستای تکافوتا و آقای ماه از شهرک جاگه در اونا سوزانده شدند که خانم اوجیما خانه آنها را آورد حتی اکنون هم آقای تراؤ این زن را اوجیما نایتینگل گل صدا میزند یاد داشته اضافه شده خلاصه سخن این زن زیبا که بوی بد میداد داد این بود که اونو او را از نقطه اصابت بمب در شهر هیروشیما حدود سه فرسخ فاصله دارد زمانی که پیکادون در روز ششم ماه اوت افتاد این زن همراه خواهر بزرگترش دو نفری در حال وجین کردن شالیزار بودند اما متوجه نشدند بمب افتاد صدای دوگان بلند شد و برگهای برنج مقابل چشمشان تکان خورد فکر کردن زلزله است دو ساعت وجین کردند در راه برگشت شکافته شدن و فرو ریختن دیوار کاشی دستشویی مغازه پارچه فروشی را دیدند قسمت بالای سمت شرقیاش بسیار شکافته شده بود آسمان شرق را که نگاه کردند ابریز سیاه در حال گسترش بود خواهر بزرگ گفت چبریست پرده دود تمرین نظامی نیست اگر غیر از این باشد وحشتناک است نه از ظهر که گذشت کامیون ها از بازار گراف سمت مدرسه می رفتند با این همه دو سه ساعت دیگر گذشت بدون اینکه چیزی بدانند حدود ساعت چهار، رئیس انجمن دفاع ملی زنان برای اطلاع رسانی این طرف آن طرف انجمن زنان اون و او را همگی به مدرسه بیایید برای پرستاری از زخمی ها بیایید، خیلی فوری به مدرسه بیایید. وقتی با عجله زیاد خودش را آماده کرد و خارج شد چند دستگاه کامیون از زخمی از کنارش گذشتند. آنچه به چشمش آمد افرادی بود با پوست سیاه سوخته، با پوست خاکستری و با پوست کند شده. افرادی که به دیوارهای قسمت عقب کامیون تکیه کرده و به نظر می مردند، افرادی که کاغذ یا حوله روی صورت خود قرار داده و فقط جلوی چشم، دهان و بینی را بازگذاشته بودند. نظامیانی که در قسمت کمک راننده نشسته بودند و غیره. پایش سوست شد و برای مدتی سر پا کنار جاده ایستد. آن زن تا مدرسه راهنماییم کرد و گفت پزشک نظامی اینجا را به شما معرفی می مهربان و بسیار مشتاق تحقیقات است. پزشکی نظامی به نام کاتا را به من معرفی کرد که صدوان سوم بود و مقابل اتاق معلمانی ایستاده بود از چهرهی مهربان او این برداشت را کردم که چندان در بند مسائل پیش پا افتاده نیست و بلند نظر به چشم میآید. در عین حال این برداشت را داشتم که فردی عمیق است چندان در بند ظاهر هم نبود بدون اینکه بخواهد به تمامی حرفهایم گوش کند گفت این اقامتگاه در حال حاضر مدرسه نیست. شعبه از بیمارستان نیروی زمینی است. اکنون اختزای موقعیت است که زخمی های نظامی و عادی با هم پذیرش شوند. خواهش می کنم در خصوص انتقال بیماران روستاییان دخالت نکنند. توضیح شما درباره ارسال یادداشتهایی از پذیرشگاه اینجا به پذیرشگاه واقع در شهرک اوناگا شاید کار شما نباشد و عمل آن روستاییان باشد. فکر کنم می است. از حرفهای شما را نشنیده میگیرم. با تاکید میگویم که این پذیرشگاه متعلق به نیروی زمینی است. احساس کردم سفسته میکند. من هم بدون یک ادا کردن پس نیم شدم. بعد تقاضای ملاقات با بیماران واحد نظامی کوجین را مطرح کردم. این را هم نپذیرفت و گفت بیمارانی که بر اثر پیکادون زخمی کاری برداشته اند حرارتی سمی از خود متساعد می میکنند که نزدیک شدن به آنها بسیار خطرناک است. در حال حاضر حتی افراد سالمی که برای پرستاری میآیند به این سم آلوده می شوند و از بیمارانی هم که از آنها پرستاری می کنند زودتر می میرند. با این مثال ها مرا ترساند. حتی افراد سالمی که آنجا تردد می کردند راحت به آن سم آلوده میشدند. مواردی بود که افرادی از شهرستان برای بردن بیمارانی که زخم سطحی داشتند آمده بودند اما در راه برگشت و بردن آنها به شهرستان خود بر زمین افتاده و احتیاج به کمک پیدا کرده بودند سطفان سوم کاتو بعد از جنگ به زادگاهش توتطوری برگشت و مرد شاید علتش نزدیک شدن به بیماری اتمی بیشمار بود یادداشت اضافه شده پزشک تا اندازه گوش تلخ به نظر می رسید. شاید هم نمی پشت پرده پذیرشگاه درهم و برهم نظامی را افراد عادی ببینند حرف زدن بیهوده بود. پس حرف نظر کردم. به هیروشیما برگشتم و این وقایه را به مقر اصلی زخمی های واحد نظامی کجین گزارش کردم. شاید خستگی و تلاشم حاصلی نداشت. اما این تلاش باعث شد تا درد انگشتان پایم تمام شود.